حلم شطر چنانکه معلوم است، اگر تفلی مهارش گیرد و ست فرسنگ برد، گردن از مطابعتش نپیچد، اما اگر در ریح و ناک پیش که موجب به باشد و طفل آنجا به نادانی خواهد شدن، زمام از کفش درگ و سلاند و بیش مطابعت نکند، که هنگام درشتی ملاطفت مضموم است و گویند دشمن به ملاطفت دوست نگردد بلکه طمع زیادت کند کسی که لطف کند با تو خاک پایش باش وگر گر ستیزه برد در دو چشم شاکن خاک سخن به لطف و کرم با دروش خو مگو که زنگ خورده نگردد به نرم سوهان پا